داستان کانلورا. زمانای قدیم پادشاهی بود که زنش بچه دار نمیشد. پادشاه فرستاده بود تو همه شهر جار بزنن، کس بتونه راهی برای بچه دار شدن پادشاه و ملکه پیشنهاد کنه، بعد از پادشاه ثروتمندترین ترین آدم مملکت میشه. اما اگه کسی هم پیشنهاد بیخودی بده، جونشو از دست میده خلاصه این خبر خیلی رو به حوث انداخته بود که یه راهی رو پیشنهاد بدن اما متاسفانه همه اون آدما جونشون رو از دست دادن تا اینکه یه روز پیر مرد پارهپوش پیش پادشاه رفت و گفت اله حضرت دستور بدین یه اجده دریایی بگیرن بعد قلبشو بدیم به یه دختر جوون که اون رو بپزه. اون وقت اون دختر آشپز فقط با بو کردن اجده سرخ شده باردار میشه. و همزمان بعد از اون که اون دختر جوون اژدها رو میپزه ملکه اگه اونو بخوره اونم باردار میشه. و هر دو تا بچه توی زمان به دنیا میان. پادشاه اگرچه اعتقادی به این حرف ها نداشت اما هرچی که پیرمرد گفته بود رو مو به مو انجام داد. به خدمتکاراش دستور داد که برن یه اژدهای دریایی شکار کنن. بعد اون اژدها رو داد به دختر زیبای کشاورز محل تا اونو بپزه. دختر آشپز بعد بو کردن قلب اژدها احساس کرد که باردار شده. بچه ملکه و دختر آشپز تو یه روز به دنیا اومدن و مثل دوگلوها شبیه به همدیگه بودن. اسم بچه ملکه رو امیلیو گذاشتن و اسم بچه آشپز رو کانلورا. این دوتا بچه مثل دوتا برادر با هم بزرگ می شدند و همدیگر هم خیلی دوست داشتن. همون اوایل ملکه هر دو تا بچه رو دوست داشت اما کم کم که بزرگ می شدن دوست نداشت که بین پسرش و یکی فرقی نباشه ملکه نسبت به پسر دختر آشباز حسادت می کرد چون فکر می کرد اون پسر باهوشتر و خوش اقبالتر از پسر خودشه این بود که برای پسرش تعریف کرد که کانلورا برادرش نیست بلکه اون بچه آشپزه و نباید خودش رو با اون یکی بدونه. اما امیلیو انقدر برادرش رو دوست داشت که گوشش به این حرفها بدهکار نبود. به خاطر همین ملک شعور کرد به بعد رفتاری با لورای بیچاره. اما امیلیو هواش داشت. هی بیشتر بهش نزدیک می شد. و این کار ملکه رو خیلی عصبانی می کرد یه روز که دو تا برادر سرگرم درست کردن گلوله برای شکار بودن امینیو یه لحظه رفت بیرون همون لحظه ملکه رفت کنار کوره و چون لورا اونجا تنها بود به قصد کشتنش یه گلوله داغ پرت کرد سمت صورتش گلوله داغ خورد به بالای چشم لورا و ی سوختگی و گودی شدید بالای چشمش به وجود اومد ملکه داشت با انبر اون گلوله را از روی صورتش بر می داشت که امیلیو سر رسید ملکه زود از اتاق رفت بیرون لورا با وجود اینکه جای زخمش خیلی میسوخت و عذیتش میکرد اما کلاهش رو تا روی پیشونیش پایین کشید و نزاشت برادرش از این قضیه اطلاع پیدا کنه. همینجور که دندوناشو به هم فشار میداد از درد به کارش ادامه داد. بعد از تموم شدن کاراشون به برادرش گفت برادر عزیزم تصمیم گرفتم واسه همیشه از این خونه برم دنبال سرنوشت خودم. امیلیو سر در نمی آورد. بهش گفت آخه چرا؟ مگه اینجا راحت نیستی؟ لورا با چشای گریون و کلاهی که تا روی پیشونیش کشیده بود به برادرش گفت سرنوشت نمیخواد که ما با هم زندگی کنیم. من باید تو رو تنها بذارم. امیلیو هر چقدر اعتراض میکرد هیچ فایده ای نداشت. آخرش لورا تفنگ خودش رو برداشت و با برادرش امیلیو به باغ رفتن. اونجا به برادرش گفت امروز باید با ناراحتی ازت جدا بشم. اما اینو برات یادگاری میذارم. شمشیرو رو تو زمین فرو کرد و از اونجا یه چشمه زلال آب بیرون زد. یه ضربه دیگه به زمین زد و نزدیک همون آب یه بوته همیشه سبز در اومد. لورا به برادرش گفت هر وقتی دیدی که این آب کدر شده و این بوته پژمرده شده، نشونه اینه که مصیبت بزرگی برای من اتفاق افتاده بعد از اینکه حرفاشون تمام شد همدیگر رو با چشمای گریون بغل کردن و دورا سوار زینه اسبش شد و قلاده ی هم گرفت و به راه افتاد رفت و رفت تا رسید به یه دوراهی یه راه به جنگل بی انتها می رفت و راه دوم به جای دیگه دنیا سر اون دوراهی که از هم جدا می شدن یه باغچه بود و توی باغچه باخچه دوتا مزرعه دار بودن که داشتن با همدیگه دعوا می کردن. نزدیک بود کار به کتک بکشه. لورا رفت توی باغچه و پرسید دعوا سر چیه؟ یکی گفت دوتا سکه پیدا کردم. این رفیقم هم چون همون موقع که پیداشون کردم کنار بم بود یکیشو از من میخواد. اون یکی هم گفت خب اول من دیدمش یا با همدیگه دیدیمش لورا از جیبش چهار تا سکه در آورد دوتا شداد به اون کسی که اون دوتای دیگر رو پیدا کرده بود و دوتا هم داد به رفیق اون مرد مزرع نمیدونستند چطوری باید ازش تشکر کنن لورا بعد از دیدن خوشحالی مزرعهدارها، دوباره به راه خودش ادامه داد و وارد راهی شد که به جنگل میرسید. همون موقع مزرعهداری داری که تا سکه داشت داد کشید و گفت آهای آقا از اونجا نرید چون اونجا به یه جنگلی میره که دیگه نمیتونید ازش بیرون بیاید. از یه راه دیگه برید. لورا ازش تشکر کرد و راه دوم رو در پیش گرفت. رفت و رفت تا رسید به پسر بچه شیطونی که با یه چوب افتاده بودن به جون یه مار که قبلا هم نوک دومشو بریده بودن تا ببینن چطوری بیدم راه میره. لورا فریاد کشید. بذاری تیوون بیچاره بره. و مار دوم بریده تا به فرار گذاشت. هوا دیگه تاریک شده بود. لوران به جنگل بزرگی رسیده بود. چنان باد سردی میزد که آدم یخ میزد از همه طرف صدای زوزه حیوونای وحشی به گوش می رسید. لورا مرگ رو جلوی چشمای خودش داشت میدید اما یهو یه دختر قشنگ فانوس به دست وست درختا ظاهر شد دست لورا رو گرفت و بهش گفت جوون بیچاره بیا بریم خونه ما بیا بریم اونجا استراحت کن خستگی در کن تو بدنت گرم بشه. یورا فکر کرد داره خواب میبینه. بدون اینکه یک یک کلمن به زبون بیاره دنبال دخترک براه افتاد. دختره وقتی اونو برد به بهش گفت اون ماری رو که از دست اون پسر بچه شیطون نجات دادی رو یادت میاد. آره یادم میاد. اون ماره منم. نگاه کن. به جای علامت نوک دوممو که بریده بودن، نوک انگشت کوچیک دست چپمو از دست دادم. و حالا همونطور که تو منو نجات دادی، منم تو رو نجات دادم. لورا خیلی خوشحال بود. اون دختر زیبا براش آتیش روشن کرد، براش غذا آماده کرد و اونها با هم شام خوردند. بعدم هر کدومشون رفتن توی اتاقشون تا بخوابن. صبح روز بعدم لورا با اون دختر زیبا خداحافظی کرد و بهش گفت من باید برم. موقع رفتن دخترک به لورا گفت شما میتونی بری ولی یادت باشه که بازم عذاب میکشی؟ اما یه روزی هم میاد که ما با هم بیه میشیم. ولی لورا منظور دخترک رو از این حرفها نفهمیده بود. ولی با این حال ازش خداحافظی کرد و به راه خودش ادامه داد. لورا تو این مسیر به یه جنگل دیگه ای رسید. وسط اون همه درخت یه گوزن شاختلایی دید. تفنگشو نشونه رفت اما کووس یه لحظه وای نمیستاد درام دنبال کووس می دوید خلاصه تو شروخ ترین قسمت جنگل که پر بود از درخت های بلند به یه قار رسید همون موقع طوفان شدیدی شروع شد تگرگ میبارید دونه های تگرگ انقدر بزرگ بود که به اندازه یه تخم مرغ میشد لورا تصمیم گرفت توی اون قار پناه بگیره. تو دهانه غار ایستاده بود و به دونه های بزرگ تگرد نگاه میکرد. صدای نازکی شنید. اون صدا به لورا میگفت آهای جوون مهربون میذاری من بیام تو قار پناه بگیرم؟ لورا بیرون رو نگاه کرد و یه مار افعی می دونست که کمک کردن به مارها براش بخت و اقبال میاره به خاطر همین به مار گفت بفرما مار افعی هم گفت میدونی میترسم که سگت گازم بگیره نمیتونی به بندیش لورا تصمیم گرفتش که بره و قلادهی سگش رو ببنده اما مار افعی گفت ممکنه اسبتم با سومش به من لگت بزنه لورا پاهای اسبش رو هم بس. بلی باز باصع امنع گفت: خب اعتماد ندارم چون تفنگ پره اگه به هر دلیلی در بره، من جونمو از دست میدم. به خاطر همین میترسم و نمیتونم بیام توی غار. لورای بیچاره به خاطر مار افعی کوتاه اومد و تفنگشم هم خالی کرد. و گفت: حالا میتونی بیای تو. هیچ چیز دیگه تو رو تهدید نمیکنه. مار افعی وارد قار شد بعد از اینکه وارد قار شد دلا فاصله بشه که یه قول در اومد لورای بیچاره با سگ و اسب بسته و توفنگ خالی یه خل سلاح شده بود اونه با یه دست اونو از موهاش گرفت و با دست دیگهش سنگ قبری رو که غار بود و برداشت و لورا رو زنده زنده انداخت توی اون گودال از اون طرف توی خونه پادشاه امیلیوی جوون آروم و قرار نداشت. هر روز میرفت به باغو، و به اون چشمه و بوته گل نگاه میکرد. کرد. یه روز که مثل همیشه رفته بود به باغ و به چشمه و به بوته نگاهی بندازه متوجه شد که آب کدر شده و بوته گل پژمرده با خودش گفت ای وای من، مصیبت بزرگی برای برادرم لورا پیش اومده. باید دنیا رو دنبالش بگردم و دنیا رو زیر پا بذارم تا بتونم براش کاری انجام بدم. نه پادشاه و نه ملکه هیچ کدوم نتونستن جلویش بگیرن. امیلیو تفنگش رو برداشت و با سگ و اسبش به افتاد. سر دوراهی به مرد مزرعهداری که چهارتا تا سکه طلا داشت برخورد کرد. مزرع دار در حالی که کلاه به دست تعظیم میکرد بهش گفت خوش یرباب اون دفعه رو یادتونه که دو تا سکه به هم دادین و من به اطلاعتون رسوندم که اون راه راه خوبی نیست و باید از یه راه دیگه برین امیلیو خوشحال از اینکه فهمید لورا از همون رد شده و از اون راه رفته در حالی که دو تا سکه دیگه هم به مرد مزرعهدار میداد بهش گفت معلومه که یادمه امیلیو به راه خودش ادامه داد. رفت و رفت تا اون که اون هم تو همون جنگل به جایی رسید که لورا پری زیبای بدون نوک انگشت کوچیک رو دیده بود رسید. پری زیبا جلوی امیلیو هم ظاهر شد و بهش گفت: خوش اومدی دوست همسر من. امیلیو حیرت زده و با تعجب بهش گفت: شما کی هستی خانوم؟ من همون پری هستم که باید با برادر شما عروسی کنم. پس به هم بگید که لورا زنده است. اگه زنده است لطفاً بگید که کجاست. من خیلی عجله دارم. باید برم پیشش. پری زیبا با چشمهای پر از عشق گفت عجله کنید. شوهر عزیز من توی یه زیرزمین مطفون شده. داره اونجا عذاب میکشه. اما خوب مواظب باشید. اگه شما هم گور اون مار دروغی رو بخوری دیگه کاری نمیتونی انجام بدی. پری زیبا این حرفا رو به امیلیو زد و بعدش هم غیب شد. امیلیو دل و جرعتش زیاد شد. رو به جلو حرکت کرد. رفت به سمت جنگل. اون هم مثل برادرش یه گوزن شاختلایی رو دید دنبالش کرد اونم گرفتار طوفان شد و تو همون قار پناه گرفت بعدش هم همون صدا رو شنید افعیه بر جنس اومد و خواست که گرم بشه مار افعی همون خواسته هایی رو که از لراداش رو برای امیلیو هم مطرح کرد امیلیو هم گفت باشه امیلیو هم مثل برادرش لورا، سگش رو بست، پای اسبش رو هم بست، اما وقتی که خواست توفنگش رو خالی کنه، یاد حرفهای پری زیبا افتاد. به مار افعی گفت، میخوای که خالیش کنم؟ به خاطر همین تفنگش نشونه رفت و دوتا تیر به سمت مار افعی شلیک کرد. اما باورش نمیشد، چی داشت میدید؟ مار افعی تبدیل به قول مردهای شده بود که یک گوشه روی زمین دراز به دراز افتاده بود فریادهای کمک کمک از زیرزمین بلند شد امیلیو به سمت غار رفت در گودالها رو برداشت و لورا رو از سوش بیرون آورد بعد از اون یه ردیف شاهزاده و شوالیه که سالهای سال فقط با آب و نون اونجا دفن شده بودن همشون از توی اون گودالها بیرون اومدن. امیلیو برادرش رو بغر کرد. بعد هم با همه اون آدم هایی که نجات پیدا کرده بودن از توی اون کار و جنگل خارج شدن. امیلیو و لورا رفتم به محلی که پری زیبایی بدون انگشت رو دیده بودن. پری زیبا هم با یه گروه از زیبا زیباتر به استقبال اونها اومده بودن. پری زیبا دست لورا رو که روی اسب نشسته بود گرفت و کمکش کرد تا از اسب پیاده شه. لورا هم وقتی پری زیبا رو میدید خیلی خوشحال شده بود. پری زیبا به لورا گفت که همه رنجامون دیگه تموم شده. تو من از مرد نجات دادی و من تو رو خوشبخت ترین مرد جهان می ما باید با همدیگه ازدواج کنیم. امیلیو هم همونجا از بین اون پری های زیبارو یک نفر رو به عنوان همسری خودش انتخاب کرد. خلاصه مراسم بزرگ عروسی پری ها امیلیو و لورا برگزار شد. و دو برادر با عروس‌های زیباشون به مملکت خودشون برگشتند تا زندگی جدیدی رو شروع کنند سفر به دنیای پر رمز و راز افسانه ها طبیعت های زیبا و نایاب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 ادساین مهران دوستی